تو راه روی دادگاه خانواده نگاهم رو آدم در ها دردای منتظر برای یه حکم سادم منتظر برای از درد ده سال توی سکوت منلم حالا پر از فریادم من برای مرد طلاق یه تمکینم و من باید بسازم یه پرونده سنگین چقدر قریبم انگار تو این اتاق و قاضی از جنس من نیست نمیشه نگاهشادی شادی دیگه نیستم دنبال حقایی که گم شد. نیستم تو یه رفتار ساده تربیت شدم اگه اعتراضی کنم به چشم مردم میشم یه فاحشه کامل اگه مادر بودم از این بیشتر بود در چون نق پدر بگیره حزانت دائم و من فقط دو روز از هفته ها ما میشدم فرزندم و صاحب بعد امضا تازه آغاز درده بعد از اینجا همه کارام به شرط باید دور باشم قسم مردای زندار بعد امضا تازه آغاز سرماست به در نگاه سنگین این بار یه مطلقه مثل منو میخواد چیکار نگران حرفای چرت همسایه است که بگه دخترشون با همه هم خوابه است نمیشه جدا شد از این خونه و آدماش هر جایی برم میگن دنبال مرد من نباش چشای مرد خودت پر شده از کسافت نداره از تو و از دخترش خجالت تو هم یه روزی شاید مثل من شی ما باید کنار هم باشیم تو این دشته بشی بیرم یه جا که نبینن شناسنامم و نفهمم من یه راه باز پر از حالم و بدون هیچ شرطی زندگی کنم نگاه هر ظهار را از خودم دور بذارم و نه تمجید و تشویق و تعریف و تکریم نه نقل و سرزنش نه تنبیه و تحدید دیگه نمیذارم این ناغسم و بسازن نفس میکشم دوباره این یه حال تازه است نفس میکشم دوباره این حال تازه است